هزار افسان بارنمیگی از گروه جوان و فرهنگ به نام خدا خالق یگانی مهربان سلام آسیابان وقتی به نزدیکی خونش رسید زن همسایه با خوشحالی به پیشوازش اومد و از اون مجرگونی خواست چون همسرش چند ساعت قبل یه پسر کوچولوی زیبا به دنیا آورد. آسیابان با شنیدن این خبر مثل سائق زده ها در جا خوشکش زد و فوری فهمید که پری برکه از این موضوع با خبر بوده و اونو فریب داده. با ناراحتی نزد همسرش رفت و گفت چرا الان این بچه به دنیا اومد ها؟ من فکر میکردم حداقل دو یا سه ماه دیگه. زن آسیابان اخ میکرد و گفت این چه مرد؟ تو بگت از به دنیا اومدن پسرمون خوشحال باشی؟ خب کمی زودتر از وقتش به دنیا اومده اشکالی نداره بیا بیا ببین چقدر ناز و توپله مرد بدون اینکه که به بچه نگاه بندزه گفت ای زن بدبخت شدی بدبخت اونچه که شریدید قسمتی از افسانه برکه جادویی بود برگرفته از کتاب بهترین افسانه‌های دنیا به قلم برادران گریم با ترجمه از هروس شبانی در این فرصت این افسانه زیبا رو براتون نقل میکنم روزی روزگاری آسیابانی و همراه همسرش در رفاه و خوشبختی زندگی می‌کردن. اونا کار و کاسبی خیلی خوبی داشتند و هر سال به مال و ثروتشون اضافه میشد و اونا از این بابت خیلی خوشحال و راضی بودن. اما اما بلا و بدبختی مثل دزد شبونه و سرزده از راه رسید و همونطور که ثروتشون زیاد شده بود هم هم به تدریج از بین رفت و اونا اونقدر فقیر و فقیرتر شدند که سرانجام چیزی به جزی آسیاب کنه براشون باقی نمود آسیابان از این وضع پیش اومده خیلی ناراحت و اندوهگین بود و مدام قصه میخورد روزی از روزها آسیابان از خونه بیرون رفت تا کمی در هوای پاک صبحگاهی قدم بزنه و دلش وابشه. اون همین که داشت از کنار صد آسیاب می‌گذشت صدای امواجی رو شنید که از سمت برکه میومد. سرش رو به اون طرف چرخوند و بلافاصله دختر جوونی رو دید که سرش رو از آب بیرون آورده بود آسیابان فورا متوجه شد که این پری نگهبان برکه است چنان ترسی وجودش رو دربر گرفت که نگو و نپوس اون نمیتونست جلو بره و نمیتونست پا به فرار بذره پریه برکه با دیدن آسیابان پرسید چی شده چرا اینقدر ناراحت و غمگینی آسیابان اول زبونش از ترس بند اومد و نتونست کلمهای بگه اما وقتی پریه برکه با مهربونی با اون حرف زد اون هم جرأت پیدا کرد و تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد و گفت که روزگاری ثروت زیادی داشته اما حالا به قدری فقیر و بیچیزی که نمیدونه باید چیکار کنه پریه برکه خنده‌ای کرد و گفت این که نداره من میتونم تو رو از قبل هم ثروتمند بکنم آسیابان با خوشحالی پرسید راست میگی چه جوری پری برکه گفت این کار شرط داره قبول میکنی؟ آسیابان با هیجان جواب داد برای ثروتمند شدن هر شرطی رو قبول میکنم خب حالا حالا بگو چه شرطی داری؟ پریه برکه گفت تو باید قول بدی که چیزی رو که همین حالا توی خونت متولد شده بدی به من قول میدی؟ آسیابان فکری کرد و با خودش گفت خدایا اون چه چیزی میتونه باشه زنم که تا فارغ شدن چند ماه دیگه وقت داره پس پس چی متولد شده آها آه یادم اومد گربمون آلیسا اون اون باید همین روزا صاحب چند بچه میشد خواب خودشه بعد با صدای بلند به پریه برکه گفت من قول میدم که هر چیزی رو که الان در خونم متورد شده به تو بدم پریه برکه با شنیدن این حرف به داخل برکه رفت و آسیابان هم شاد و خوشحال به طرف خونش براه افتاد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 مرد بدون اینکه که به بچه نگاه بندازه گفت اه ای زن بدبخت شدیم. و بعد تمام ماجرا رو برای زنش بازگو کرد و به اون گفت که چه قولی به پری برکه داده زن آسیابان با گریه گفت صرفت و خوشبختی به چه دردمون می‌خوره وقتی قرار پسرمون رو از دست بدیم در همین بین بخت و اقبال دوباره به آسیابان رو کرد آسیابان دست به هر کاری که میزد با موفقیت رو بروم شد و هنوز چند ماهی نگذشته بود که آسیابان حتی از روز اولش هم ثروتمندتر شد ولی با تمام این و صاف آسیابان و زنش احساس خوشبختی نمی کردن. و قولی که به پری برکه داده بودن بر فکر و روحشون سنگینی کرد و هر لحظه ترس و نگرانی این رو داشتن که پریه برکز راه برسه و پسرشون رو با خودش ببره اونا مدام به پسرشون تذکر میدادن که اگه به کنار برکه بره ممکنه توی برکه کسی اونو به زیر بکشونه بنابراین نباید هیچ وقت به برکه نزدیک بشه چند سالی گذشت پسر آسیابان بزرگ و بزرگتر شد و به جوان رشید و برومندی مبدل شد اما خبری از اومدن پری برکه نشد و آسیابان و زنش هم کم کم نگرانیشون برطرف شد آسیابان پسرش رو به یه شکارچی کاردان سپرد تا شکار رو به اون یاد بده و جوان بهقدری در این کار مهارت پیدا کرد که بعد از پایان دوری کارآموزیش عربا به دهکد و اونو به خدمت خودش در آورد و دخترش رو به عقد اون در آورد و به این ترتیب پسر آسیابان و دختر ارباب دهکده زندگی خوب و شادی رو آغاز کرده تا اینکه روزی شکارچی افسانی ما یعنی همون پسر آسیابان به تعقیب گوزنی پرداخت وقتی گوز از جنگل به دشت فرار کرد اونو دنبال کرد و بالاخره با یک گلوله گوز رو به خاک انداخت در این موقع جوون متوجه نشد که به حاشیه برکه نزدیک شده. و به همین خاطر بعد از کندن پوست گوزن به لب برکه رفت تا دستان خونالودش رو بشوره. اما هنوز دستش به آب نرسیده بود که پری برکه لبخند زنان سر از آب بیرون آورد. دستان پسر افسانه‌ای ما رو گرفت و با حرکتی سریع اون رو به داخل برکه کشید. روز گذشت و شب فرا رسید و شکارچی جوان افسانی ما به خونه بر نگشت و زنش از این بابت نگران شد اون برای پیدا کردن همسرش به جاهای مختلفی رفت اما رد پایی از اون ندید که ندید در این موقع یادش اومد که همسرش بارها و بارها به اون گفته بود که بایستی مواظب ظاهر شدن پریه برکه باشه و زیاد به کنار برکه نره و حالا حدث میزد که چه اتفاقی افتاد. زن با عجله خودش رو به کنار آب برکه رسوند و با دیدن تفنگ همسرش که در کنار برکه افتاده بود دیگه در مورد بلایی که بر سرش نازل شده شک نکرد. زن بیچاره در حالی که دستانش رو با اندوه و وحشت به هم میمالید شروع کرد به صدا زدن همسرش. اما هیچ پاسخی نشنید. از این گوشه به اون گوشه رفت. التماس کرد. زاری کرد. پریه برکر رو سرزنش کرد. اما هیچ کدام از اینها فایده نداشت که نداشت. خلاصه. زن هرچه ناله کرد کارساز نبود. به کم کم بدن رنجورش تاب و توان خودش را از دست داد. و بیهوش نقش زمین شد. و به خواب عمیقی فرو رفت. و به رؤیاه عجیبی از ذهنش گذشت انگار داشت با حالتی افسرده و غمگین از سخراهای سنگی بزرگی بالا می رفت خار و خاشاک پاهاش رو زخمی و خونین کرده بود قطرات بارون به صورتش ضربه می زد اما وقتی به بالاترین نقطه رسید چیز کاملا متفاوتی در انتظارش بود آسمون صاف و آبی رنگ هوا خنک و خوشبو و زمین پوشیده بود از سبز و چمن روی مرزار سبزی که پر از گلهای زیبا و رنگارنگ بود کلبه‌ای به چشم می‌خورد زن جلوتر رفت و در کلبه رو به آرومی باز کرد پیرزن سپید موی رو دید که در گوشه‌ای از کلبه نشسته و با مهربونی به اون اشاره میکنه که نزدیک‌تر بره در همین لحظه یه دفعه از خواب برید دیگه چیزی به طول و آفتاب نمونده بود زن نمیدونست چیکار کنه با خودش گفت آه خدای من چه رویای عجیبی باید حکمتی در اون باشه بعد تصمیم گرفت هر طوری شده مسیر رویای شبانش رو دنبال زن مسیر رؤیایی رو که دیده بود دنبال کرد. در همون نزدیکی تپهی بود. زن از اون بالا رفت و جاده رو که در خواب دیده بود پیدا کرد. جاده به سخراهای بلندی ختم میشد که کلبه مرزار در بالای اون قرار داشت و پیرزن سپید مو هم در داخل اون نشسته بود. پیرزن با مهربونی زن رو به داخل کلبه دعوت کرد و گفت تو بایستی دوشار بلای بزرگی شده باشی که رنج این سفر پرخطر رو برخودت هم بار کردی ها؟ زن با چشمای عشق تمام اون چه رو که اتفاق افتاده بود برای پیرزن سفید مو تعریف کرد پیرزن گفت آروم باش دخته جان آروم باش من به تو کمک می بعد قیچی طلایی کوچکی رو به زن داد و گفت بیا این قیچی رو بگیر صبر کن تا قرص کامل ماه بالا بیاد اون وقت به کنار برکه برو و با این قیچی طلایی چمنها و سبزهای اطراف برکه رو قیچی کن بعد کنار برکه دراز بکش و ببین چه اتفاقی رخ میده زن به خونش برگشت و منتظر بالا اومدنه ماه کامل شب چارده شد. به وقتی غرص درخشان ماه چارده از پشت ها بالا اومد، فوراً به طرف برکه رفت و با قیچی تلایی شروع به چیدن چمنها و سبزه کنار برکه کرد. بعد دراز کشید و منتظر موند. طولی نکشید که آب برکه شروع به قلغل کرد و موجی که به روی ساحل اومده بود، موقع عقب نشینی قیچی طلایی رو شست و با خودش برد. در طول زمانی که برای رفتن قیچی طلایی به برکه لازم بود سر شکارچی جوان ظاهر شد ولی چیزی نگفت اما با حالتی غمگین به چهره زنش نگاه کرد و درست لحظهای بعد موج دیگهی به حرکت درآمد و سر جوان شکارچی رو پوشون و بعد هم همه چیز نابتید شد و آبهای برکه دوباره صاف و آروم شدند و دیگه چیزی به جز قرص کامل ما در اونجا به چشم نمی زن ناراحت و غمگین به خونه برگشت و در رؤیای اون شب دوباره یه پیرزن رو دید بعد برای بار دوم بالای تپه سنگی سفر کرد و نزد پیرزن سپیت مو رفت و شروع به گلو شکایت کرد پیرزن این بار یه نیلوک اون داد و گفت تا غرص کامل ماه بعدی صبر کن دختر جان. و بعد در حاشیه برکه نغمه دلنشینی رو بنواز و روی چمن دراز بکش و مثل دفعه قبل منتظر بمون تا ببینی چه اتفاقی میافته زن دقیقا همون کارهایی رو که پیر به اون گفته بود انجام داد و به محض اونکه بک رو روی زمین گذاشت و روی چمنزار دراز کشید آب شروع کرد به غلغل کردن و موجی بزرگ نیلبک رو با خودش برد. با. این بار نه فقط سر شکارچی جوان بلکه نیمی از بدنش هم ظاهر شد و دستش رو به طرف همسرش دراز کرد. اما در همون لحظه موج دیگه اومد و روی سرش ریخت و دوباره شکارچی جوان رو پایین کشید. زن بیچاره با ناراحتی فریاد کشید و گفت: "افسوس، افسوس! اینم کمکی به من نکرد. چه فایده که شوهر عزیزم رو ببینم؟" و باز اونو از دست بدم. و دوباره غم و اندو وجود زن رو فرا گرفت. اما در رؤیاهاش دوباره به کلبه ی پیرزن سپید رفت و این بار یه دوک نخریسی طلایی از پیرزن دریافت کرد. پیرزن اونو دلداری داد و گفت دخترم هنوز ماجرا تموم نشده. تا غرص کامل ماه بعدی صبر کن. بعد مثل دفعات قبل کنار برکه بشین و اونقدر نخ بریس که دوکت پر بشه. بعد اون رو روی ساحل برکه بذار و منتظر بمون. زن که چاره نداشت دقیقا همه این کارها رو انجام داد. به محض اینکه قرص کامل ماه بالا اومد اون با عجله دوک نخ ریسیش رو به کنار برکه برد و تا اونجا که میتونست شروع کرد به ریسیدن نخ اما هنوز اون رو زمین نذاشته بود که آبها سریعتر از همیشه شروع به جوشیدن کردن و موج عظیمی به ساحل کوبید و دوک طلایی رو با خودش برد بلافاصله بعد از اون سر و تمام بدن شکارچی جوون از آب بیرون اومد و اون به سرعت پرید و دست زنش رو گرفت و همراه اون از اونجا دور شده شکارچی جوان و همسرش هنوز مسافت زیادی رو طی نکرده بودند که یه دفعه تمامی برکه با صدای قررش وحشتناکی تقیان کرد و سیلاب عظیمی به طرف دشت و رودهای های اطراف برافتد شکارچی جوان و همسرش مرگ رو در مقابل چشماشون دیدن زن بیچاره از شدت ترس فریاد زد پیر زن مهربون پیر زن مهربون کاری بکن و در یه چشم هم زدن اونا تغییر شکل دادن حالا با خودتون فکر میکنی اونا چه شکلی شدن الان تعریف میکنم یکی به قرباقه تبدیل شد و دیگری به وزق و سیل مهیبی که در همون لحظه به اونا رسید نتونست هیچ صدمی به اونا برسونه و فقط اونا رو از هم جدا کرد و به دور دست ها برد کم کم آب‌ها فروکش کردند و قورباغه و وزق یا همون شکارشی جوون و همسرش وقتی پا به زمین خشک گذاشتن دوباره به شکل اصلی خودشون در اومدن اما اما هیچ کدوم نمی‌دونستان که دیگری کجاست و هر دو در بین مردم غریب و ناآشنایی بودن که تاکنون چیزی درباره‌ی سرزمین اونها نشنیده بودن. تپه‌های مرتفع و در راه های عمیق بین زن و شوهر بیچاره فاصله انداخته بود و اونها برای اینکه امرار معاش کنن هر دو مجبور شدن به کار گلهداری و چوپانی روی بیان سالها گذشت و شکارچی جوون و همسرش همچنان دور از یک دیگه در مزاره و جنگل ها خودشون رو به چرا می بردن و با قلبی محزون و افسرده به هم دیگه فکر می کردن. اما اما وقتی که بار دیگه بهار چتر سبزش رو در همه جا گستروند بر حسب تصادف هر دوی اونها گله خودشون رو در همون روز برای چرا بیرون بردن و هر دو به طرف یه محل براف دادن شکارچی روی یکی از قله دوردست چشمش به گلهی از گوسفند افتاد و گله خودش رو هم به اون طرف هدایت کرد به این ترتیب هر دو در یه درهی سرسبز به هم رسیدن اما غم هجران و دوری از همدیگه چهره اونها رو تغییر داده بود و دیگه رد پایی از اون تراوت و جوانی در اونها دیده نمی شد بنابراین زن و شوهر همدیگر رو نشناخدن. اونا فقط از این خوشحال بودن که دیگه مجبور نبودن به تنهایی دشت و تپه ها رو زیر پا بذارن از اون روز به بعد هر دو با هم گله هاشون رو به چرا می بردن و بدون اینکه با هم صحبت کنن احساس می که از بودن در کنار هم دیگه احساس آرامش می کنن. چند روزی گذشت یه شب وقتی که غرص کامل ماه توی آسمون ظاهر شده بود و گوسفندان به آرومی در حال چرا بودن مرد نیلبکی رو از جیبش بیرون آورد و مشغول نواختن آهنگ ملایم و غمگینی شد وقتی آهنگ به پایان رسید دید که زن چوپان به تلخی عشق میریزه مرد از اون پرسید چی شده؟ این آهنگ تو رو ناراحت کرد؟ زن آهی کشید و گفت آه نه این آهنگ منو بیاد زمان این داخت که ماه شب چهارده مثل امشب توی آسمون می درخشید و من نیلاک طلایی رو به صدا در آوردم و همسرم از برک بیرون اومد و بعدش هم دوباره به زیر آب رفت در همین حین که زن مشغول صحبت بود مرد چوپان با دقت و اشتیاق به چهره زن خیره شد و یه دفعه همسر وفادارش رو شناخت در همون لحظه زن هم اون رو به خاطر آورد چون نور محتاب به وضوح چهره همسرش رو روشن کرده بود اونا در اون لحظه خوشحالترین و خوشپخترین زن و شوهر دنیا بودن افثانه برکه جادویی رو براتون نقل کردم برگرفت از کتاب بهترین افسانه‌های دنیا اثر برادران گریم با ترجمه از هروس شبانی افسانه ها برای این خلق شدند که ما اونا رو بشنویم بخونیم، عبرت بگیریم و پندهاشون رو به کار ببندیم و اونا رو پاس بداریم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور، ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار راهله قفاری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده صانی دیگر بدرود